یا این که اسلام گفته از خانمها حجاب داشته باشند و بخوان در یک پوششی قرار بگیرند، این یک محدودیت دست پاگیر برای اینکه که خانمها پیشرفت بکنند نیست محدودیت دست پاگیر نیست مانع پیشرفت رو نمیشه یا توهین و تحقیر به خانمها نیست که شما حتما باید خودتونو بپوشونید، خودتونو از مثلا مردها مخفی نگه دارید. شما خیلی مثل بقیه مردهایی که با آقایون میشینن حرف میزنن، شما با آقایون اینجوری نشنید، حرف نزنید. اینا چیه که قرآن برای خانمها مطرح کرد؟ به ویژه این به ویژه رو حساسیت دارم. اسم نمیبرم، نویسنده رو مطرح نمی کنم، ولی متشکرم از خانومی که این کتاب رو به من دادن و فرمودن که شما این کتاب رو هم بخوانید. و اگر میخواید حقوق زن رو از دیده هجاب مطرح کنید و نسبت به این کتاب مطالبی که گفته نظرتون رو بدید مثلا نویسندهای راجب هجاب کتاب نوشته به خصوص اگر هجاب اینجوری مطرح کنیم. میگه خانما ها اصلا حق ندارن از خونه بیان بیرون خانما اگه میخوان با آقایون حرف بزنن هم باید یه پرده بکشید پشت پرده باشن و روبرو با هم حرف نزنن خانم اگر میخواد با آقا سخط کنه بعضی از اینها رو به بعضی آیات یا روایات هم استناد دادن. خانمها اگه بخوان با آقایون نامحرم سخن بگن بیش از پنج کلمه حق ندارن. پنج کلمه حرف زدن دیگه نباید حرف بزنن. خب این خانم میگه که حالا اگر من دانشجو باشم استادم مرد باشه نیاز به سوال داشته باشم این سوال پنج کلمه بیشتر رو اختضا بکنه خب اگر هجاب معناشینه که پس من اصلا با دانشو نشم سر کلاس نرم یا اگر من پیش مرجع تقلیدم میرم مرجع تقلید من مرده هر وقتی هم ما رفتیم پیش مرجعمون یه چادر نکشیدن بین ما و مرجع یه هجاب نذاشتن ما نشستیم در محضر مرجعمون اگر حجاب اینه که این کتاب نوشته پس چرا مرجع تقلید با ما حرف میزنه تو یه اتاق اونور نشسته منم اینور نشستم. یا پردم بین من و مرجع تقلید نکشیدن بعد سوالاتی که من از مرجم پرسیدم گاهی دو سه ساعت طول کشیده اینکه خیلی بیش از پنج کلمه بوده اگر اونی که فقها مراجع دارن عمل میکنن درسته پس این کتابا چیه این منویسن پخش میکنن اگر اونی که این کتابام این منویسن به عنوان هجاب تو جامعه رواج میدن پس چرا مراجع اینجوری عمل میکنن این حرف راسته من این انتقاد یا این سوال را از اون سوال کننده یا خاننده محترمی که این گونه کتاب ها رو خونده حق میدم. لذا ببینید ما اگر میخواییم بگیم قرآن فرموده است هجاب، قرآن چی فرموده؟ دستوری که اسلام داده چگونه است؟ همونطوری که اگر قرآن فرموده فضربوها نه، بله قرآن فرموده، ولی قرآن چگونه فرموده؟ چقدر با هم بحث کردیم؟ روایات چه رو آوردیم، توضیحات رو آوردیم، نظر فقها ها رو آوردیم تو معلوم شد که در رابطه با یه موضوع خاصیه با یه شرایط خاصی. آیا اگر اسلام فرموده است هجاب که مسلم است؟ قرآن فرموده است خمر و جلباب که قطعی است؟ چگونه گفته، با چه شرایطی گفته، با اون شرایط و اون امر، این به نفع جامعه بشریت است؟ احترام به خانم هاست حقوق زن رو بهتر لحاظ کردن است یا توهین و جسارت به خانم هاست نعوزه بالله و تحقیر به خانم هاست رو اونها رو محدود کرده نگذاشته رشد کنن جواب میگیم اگر اسلام فرموده است هجاب خوب دقت بفرمایید. اولا در آیهی که نویسنده این کتاب هجاب که رواج داده و این خانم هم براش ایجاد سوال شده یا دیگران شاید سوال میکنن این در سوره احزاب آمده که اگر افراد میخوان با همسران پیغمبر سخن بگن اینها از برای حجاب با همسران پیغمبر سخن بگن الان من اجازه بدید آیه رو براتون بخونم آیه شماره پنجاب و سه از سوره احزاب که آیه 59 دستور کلی هجاب برای هم است. آیه 59 که برای همه است دقت بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو انبی قل که و بناتک و نساء المؤمنین به پیغمبر بگو به همسران به دختران و به زنان مؤمنه‌ای که به تو ایمان آوردند یعنی دستور فقط مال خانمهای خودت نیست، مال دختر خودت نیست، دخترهای خودت نیست. برای هر زنی که ایمان آورده اسلام رو قبول کرده به توی پیغمبر مؤمن شده این دستور برای همه است. یا این آیه 59، یا ایوه النبی قل از و بناتک و نسائل المؤمنین یدنین علیهن من جلابی به این جلابی بهشون را جمعه جلباب. جلبابی که رو سرشون میندازن این پوشش سرداسری مثلا یه وقت جوری باز باد میزنه میره کنار لباسای زیر جلبابم هم پیداست میگه اینو به خودشون نزدیک کنن یعنی این چادر رو این پوشش رو یه جوری بگیرن که این جوری باز نباشه که احیانا مثلا زیر این پوشش پیدا باشه خب اینجا دستور مال فقط همسران نیست فقط دختران نیست نساء مؤمنه که این بحثشو قبلا عرض کردم چون بحث شده نمیدم اما آیه 5 و دقت بفرمایید میگه یا ای الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعاما غیر ناظرین شما بدون اجازه پیغمبر وارد خونش نشید حالا حتی میخواد بریید یه غذایی بخورید اونجا اجازه بهتون دادن اجازه ورود اینجا رو حالا تا میرسیم به این قسمت آیه طولانیه تا اونجا میفرماید که اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اظهر للقلوبكم وقلوبهن اگر شما وارد خونه پیغمبر شدید میخواد یه مسئله رو از خانواده پیغمبر همسران پیغمبر زنانی که تو خونه پیغمبرن محارم پیغمبرن سوال کنید برای دل شما و دل اونها پاکتر تر اینه که از ورای حجاب این دستور خاص همسران پیغمبره در یک جهت خاصی از نظر شرایط حریم نبوی رو مثلا همسران پیغمبر بعد از پیغمبر ازدواجش با بقیه حرامه حکم چی دارن؟ مادر اگر میگن ام المؤمنین از این دید میگن یعنی هر کسی که مؤمنه به پیغمبر شده است همسر پیغمبر حکم مادر براش داره نمیتونه باش ازدواج کنه زن پیغمبره به همین جهتم هر زنی که میخواست با پیغمبر ازدواج کنه اول مطرح میشد در صورتی میتونی زر پیغمبر بشی اگر پیغمبر از دنیا رفت زنان دیگر شوهرشون از دنیا رفتن شما میتونید با یه مرد دیگه بعد از عده با شرایطی ازدواج کنید ولی اگه زن پیغمبر شدید نمیتونید چون حرمت حریم پیغمبر به عنوان پیغمبر و پدر مؤمنین باید حفظ بشه این دستور خاص به اون جهته وگرنه گرنه اگر دستور در مورد کل زنان باشه اسلام گفته باشه خانما پشت پرده بشینن هیچ کسی با آقایون بله هجاب باید رعایت کنن حالا ارزم میکنم اینا رو حد ضرورت نداره با نامحرم اختلاط نداشته باشن ضرورت نداره با نامحرم حرف نزنن من بارها تو دانشگاه جوونا که مراجعه میکنن گفتم گفتم آقا شما مثلا یه سوالی داری میخوای از همکلاسی بپرسی که استاد جلسه قبل چی گفت غایب بودم جزوه چی داد توضیح چی داد هم همکلاسی پسر داری هم دختر خب شما از پسر بپرسی چرا میری از دختر میپرسی؟ این معلومه که یه چیزیش میشه یا دختر خانم رو میگی آقا شما قایب بودی حالا میخوای بری از همکلاسی بپرسی استاد چی گفت خب چرا نمیری از همکلاسی دختر بپرسی حالا لازمه حتما بری از همکلاسی پسر بپرسی گفتن یه کاروان دزدی یه کاروانی رو داشت مسافری از جای گردنه رد میشد اینا رو کمین کردن و مرداشون رو همه رو دستگیر کردن انبالشون گرفتن به زناشون گفتن ما میزنیم شما برخصید خب زنان دیدن که دز دستو کاربونو زدن و زنا می کمی رقصیدن بعد اینا رو آزاد کردن. اینا که آزاد شدن، برخی از این شوهرها به همسراشون گفتن برای چی رقصیدید؟ گفتن خب دیدید که اینا شمشیر داشتن و گفت خوشرقسی با رقص مجبوری فرق داره. شما خوشرقسی داشتید. یه وقت مجبوره به رقصه، یه وقت خوشرقسی میکنه یه وقت انسان ای نداره، حالا رفته بهش مرجع تقلیدش می‌خواد سوال بپرس. تو کلاس درس از استادش می‌خواد یه سوال بکنه با حفظ همه ی به شرعی اما یه وقت الان میتونه این سوال از همکلاسی دختر بپرسی میرد اینا رو من نمیگم ببینید اسلام اومده گفته اگر خانمها باید خمر و جلباب داشته باشن کجا اسلام گفته خانمها نمیتونن پیشرفت کنن نمیتونن درس بخونن نمیتونن ما هم در صدر اسلام نمونهش و فرابان داشتیم که با ورود پیغمبر در مدینه در مکه پیغمبر در محدودیت بودن، دست پیغمبر باز نبود. ولی در مدینه که پیغمبر یه مقداری دستشون باز شد و توانستن نظرشون رو اعمال کنن، امکان اعمال مکتب خودشون رو پیدا کردن، تو مردمی که دخترها رو زنده دفن میکردن، تو مردمی که برای زن ارزش وارث قائل نبودن، زنها رو ارث میدونستند. تو مردمی که اگر یه مردی فرزندش دختر بود عذا می گرفت با همه این حرفها خب من قبلا براتون بحث کردم چه مقامی رو پیغمبر برای خانم ها قائل شد و حتی دستور داد همونطوری که آقایون علمی آموزن خانم ها علمی آموزن.